سلام من فتانا هستم و شما به قسمت هفتم از فصل اول قصه های برای خواب های بنفش رادیو هجده بنفش گوش می کنید. این قسمت آخرین قسمت از فصل اول قصه های برای خواب های بنفشه بخش هفتم سرنوشت موش ها کشف می شود جارد گفت من به کمک شما نیاز دارم برادر و خواهرش جلوی تلویزیون روی فرش دراز کشیده بودند. هر کدام دسته ای از دستگاه بازی را در دست داشتند. و جارد از جایی که ایستاده بود، می توانست تغییر رنگ را روی صورت آنها ببیند. ملوری خُرناسه کشید، اما پاسخی نداد. جارد فکر کرد حتما این یک جور پاسخ مثبت است، چون در این لحظه هر چیزی که با مشت همراه نباشد، پاسخ مثبت به حساب می آید. جارد در حالی که کتاب را از صفحه مربوط به جن شرور باز می‌کرد گفت من میدونم شما فکر می‌کنید من اون کارا را کردم اما من نکردم راست میگم شما صدای اون چیز چیزو توی دیوار شنیدین نوشتهای روی میز رد پای روی آرت هم بود بلونه یادتون هست یادتون هست که شما دو نفر چطور همه چیزو از اون لونه بیرون کشیدی ملوری ایستاد و کتاب را از دست او قاپید جارد با التماس گفت اونو پس بده و سعی کرد کتاب را به ملوری کتاب را بالای سرش گرفت و گفت این کتاب همه درد سر را شروع کرد جارد گفت نه خیر، درست نیست من کتابو بعد از گره خوردن موایی تو پیدا کردم ملوری اونو پس بده خواهش میکنم پس بده ملوری کتاب را با دو دستش گرفت و آماده شد تا آن را پاره کند جارد گفت ملوری نه نه و از وحشت دیگر نتوانست حرفی بزند اگر با سرعت راه حلی پیدا نمی کرد کتاب تکه تکه می شود. سیمون از زمین بلند شد و گفت مل سب کن ملوری سب کرد جارد چه کمکی می خواستی؟ جار نفس عمیقی کشید و گفت من به این فکر کردم که اگه خراب کردن لونه اون چیز باعث شده اون ناراحت شه، پس شاید بتونیم لونه جدیدی براش بسازیم من من یه لونه ای پرنده برداشتم و چیزایی توش گذاشتم. فکر کردم خب فکر کردم شاید جن شروع کمی شبیه ما باشه چون شاید اون هم مثل ما توی این خونه زمینگیر شده باشه منظورم اینه که شاید من نمیخواد اینجا باشه شاید اینجا موندن عصبانیش کرده ملوری کتاب را با حالتی که کمتر آمیز بود گرفت و گفت خیلی خوب قبل از اینکه که بگم حرفتو باور میکنم بگو دقیقا میخوای ما چی کار بکنیم جال گفت میخوام بالا بر راه بندازیم تا من بتونم لونه پرنده رو به کتابخونه ببرم. ببرم کردم اونجا باید هم باشه ملوری گفت بذار لونه پرنده رو ببینم او و سیمون دوبال جارد به راه رو رفتن و او همه چیز را نشانشان داد. این لانه چوبی پرنده آنقدر بزرگ بود که یک کلاق هم میتوانست راحت تویش بنشیند جاک آن را میان لانه های پرنده‌ای که زیر شیروانی آویزان بودند پیدا کرده بود. او قسمت عقب را بالا زد و بهشان نشان داد که چگونه همه چیز را دقیرسوسکا با دقت توی آن چیده تکه های کوچک کلمات روزنامه ها را همراه با تعدادی عکس کوچک مجلات با چسب روی دیوار چسبانده بود. سیمون پرسید: تو برای درست کردن این عکس ها را از مجله مامان بریدی؟ جارد شانه بالا انداخت و گفت بله ملوری گفت چقدر کار کردی؟ جارد پرسید پس به من کمک میکنین؟ دلش میخواست ملوری کتابش را پس بدهد اما نمیخواست خواهرش را دوباره عصبانی کند ملوری به سیمون نگاه کرد و با, با حرکت سر نظر او را پرسید سیمون گفت به شرط اینکه اول من بالا برم جارد پس از مکس کوتاهی گفت باشه آنها بی سر و صدا از کنار اتاقی که مادرشان تلفنی با شرکت ساختمانی حرف میزد گذشتند و به آشپزخانه رفتن سیمون جلوی بالابر ایستاد و پرسید فکر می کنی موشای منم زنده‌اند جورد نمیدانست چه بگوید بچه قرباقه هایی یخزده فکر کرد دلش میخواست سیمون کمکش کند، اما دوست نداشت دروغ بگوید سیمون روی چهار دست و پا نشست و وارد بالا شد چند لحظه بعد ملوری او را از داخل دیوار بالا کشید سیمون هنگام شروع حرکت آخه کوچکی گفت اما بعد دیگر صدای شمیده نشد حتی وقتی بالا بر ایستاد ملوری گفت تو گفتی یه میز و مقداری کاغذ اونجاست جارد گفت بله اما نمیدانست که خواهرش چه هدفی داره اگر باور نمی کرد می توانست وقتی سیمون پایین بیاید از او بپرسد خب اونا باید اون چیزا رو یه جوری توی اتاق ورده باشم و تازه اون چیزها هم نبودن مگه نه پس یه آدم بزرگ توی اونجا کار می کرده اما یه دن بزرگ چطوری به اون اتاق میرفته جارد چند لحظه شد اما بعد فهمید و گفت یک در مخفی ملوری با حرکت سر تایید کرد و گفت شاید بالا بعد به پایین برگشت و جارد سوار شد. لانه پرنده کوچک را به سیناش عشق ملوری او را در تونل تاریک بالا کشید. سفر سریع بود. با این حال جارد از دیدن کتابخانه خوشحال شد. سیمون وسط اتاق ایستاده بود و با حیرت اطرافش را تماشا میکرد. جارد با لبخند گفت دیدی؟ دی؟ سیمون گفت اینجا خیلی جالبه به همه این کتاب هی نگاه کن جارد که به در مخفی فکر میکرد سعی کرد در ذهنش محل آن اتاق را نسبت به بقیه اتاقهای طبقه بالا مجسم کند حد زد که کدام دیوار به طرف راه راست جارد گفت ملوری فکر میکنه یه در مخفی اینجاست سیمون کنارش ایستاد کنار دیواری که جار با آن نگاه می کرد یک قفسه کتاب یک تابلوی بزرگ و یک کمود کوچک وجود داشت سیمون گفت تابلو و با کمک هم نقاشی رنگ روغن بزرگ را پایین آوردن این نقاشی مردی لاغر و عینکی بود که روی صندلی سبز رنگی نشسته بود جارد فکر کرد یعنی این آرتور اسپایدر است پشت تابلو به غیر از دیواری صافت چیزی نبود جارد گفت شاید باید چند تا کتاب رو بیرون بکشید و کتابی به نام قارچهای مرموز قارچهای افسانه‌ای را بیرون آورد سیمون درهای کمود را باز کرد و گفت هی اینو ببین درها به کمود بزرگ ملحفه ها در طبقه بالا باز می شدن. چند دقیقه بعد ملوری هم توی اتاق بود و به اطراف اتاق نگاه می کرد. او گفت: "اینجا چقدر مرموز و ترسناکه. سیمون با لبخند گفت: "بله، و به غیر از ما هیچ کس چیزی درباره او نمیدونه. جارد گفت: "و درباره جن شرور، او لانه پرنده را از دسته چراغ دیواری آویزان کرد." ملوری و سیمون کمکش کردند تا همه چیز توی لانه مرتب باشد و بعد هر کدام چیزی به لانه اضافه کردند. جاردی که دستکش های را گذاشت و فکر کرد جرن شرور می تواند به جای کیسه خواب از آن استفاده کند سیمون ظرفی را که زمانی برای آب دادن و خزندگانش از آن استفاده می کرد توی لانه گذاشت و ملوری هم که انگار کمی حرف جارد را باور کرده بود شمشیر شمشیربازی با روبان آبی رنگ را توی لانه گذاشت وقتی کارشان تمام شد همه چیز را وارسی کردن همه معتقد بودند که خانه خوبی درست کردند. سیمون پیشنهاد داد: بیاید یادداشتی براش بزارید. یاد پرسید یادداشت، سیمون گفت. بله بعد توی کشه های میز را گشت و مقداری کاغذ، یک قلمو و یک بطری جوهر پیدا کرد جارد گفت هی hey, من متوجه این نشده بودم او روی میز به نقاشی آبرنگ یک مرد و دختری کوچک اشاره کرد زیر تابلو با مداد اما خیلی کمرنگ نوشته بود دختر عزیزم لوسیندا در سن چهار سالگی ملوری پرسید پس آرتور پدر اونه سیمون گفت شاید و قسمتی از میز را تمیز کرد تا بتواند بنویسد ملوری گفت بزار من بنویسم یقین طول میکشه تا شما چیزی بنویسید. فقط بگیم باید چی بنویسم او در جوهر را باز کرد و نوک قلم را به آن زد حرکت قلم روی کاغذ صدای خشخشی ایجاد کرد سیمون برای شروع گفت جن عزیز جار پرسید فکر میکنی این معدبان است ملوری گفت که همین رو نوشتم سیمون ادامه داد جن عزیز ما این نامه را نوشتیم تا بگوییم از اینکه که خانه اولت رو خراب کردیم متاسفیم امیدواریم خانه ای را که برایت ساخته ایم دوست داشته باشی و حتی اگر دوست نداشته باشید دیگر ما را نزنی و کارهای بدی انجام ندهید و اگر جفری و قطر لیمو را برداشته ای با دقت از آنها مراقبت کنی چون آنها خوبی هستند. ملوری گفت: "نوشتم." جارد گفت: "کافیه، خوبه." آنها یادداشت را نزدیک خانه کوچک روی زمین گذاشتند و از کتابخانه بیرون رفتند. در هفته بعد هیچ کدام فرصت نکردند به کتابخانه بروند. حتی از ملحفه ها کارگران ساختمانی تمام روز در خانه رفت و آمد می کردن و مادرشان شبها با دقت آنها را تحت نظر داشت. حتی در راه روها قدم میزد و کشیک میکشید. مدرسه دوباره شروع شده بود و آنقدرها هم که جارد می ترسید بد نبود مدرسه جدید کوچک بود اما برای ملوری تیم شمشیربازی داشت و در دو روز اول هیچ کس با آنها بدرفتاری نکرد جارد هم توانسته بود تا آن لحظه خودش و رفتارش را کنترل کند. بهتر از همه اینکه دیگر از حمله‌های شبانه خبری نبود. صدای پایی توی دیوارها شنیده نمیشد و غیر از موهای کوتاه ملوری هیچ نشانی از وقوع چنین حوادثی باقی نمانده بود. اما حالا سیمون و ملوری هم به اندازه جارد مشتاق بودند که به اتاق بروند. یک روز یک شنبه که مادرشان برای خرید بیرون رفت، و همه چیز را به ملوری سپرد، فرصت مناسب را پیدا کرد. به محض اینکه خودروی مادرشان از حیاط به خانه رفت، آنها به طرف انباری طبقه بالا دویدند. داخل کتابخانه چیز زیادی تغییر نکرده بود. تابلو دوباره از دیوار، بلانی پرنده هم از چراغ دیواری آویزان بود. انگار همه چیز مثل وقتی بود که اتاق را ترک کرده بودند. سیمون اعلام کرد یاداش رفته ملوری از پرسید تو اونو برداشتی؟ جارد با اصرار گفت نه صدای بلند صاف کردن گلو شنیده شد و هر سه به طرف میز چرخیدند. روی میز مرد کوچکی به اندازه یک مداد در لباسی کهنه و کلاهی لبهدار ایستاده بود چشمهایش به سیاهی سوزکا و دماغش بزرگ و قرمز و خیلی شبیه تصویر کتاب راهنما او دو افسار در دست داشت که به دو موش خاکستری بسته شده بودند موشها ها لبه میز را بوبی کردند جارت فریاد زد جفری قطر لیمو مرد کوچک گفت تیم بلتاک خانه جدیدش را دوست داره اما نیامده که اینو بگه جارت که نمیدانست چه باید بگوید سرتکانه یافه‌ی ملوری طوری بود که انگار کسی سیلی محکمی به او زده است اما خودش هنوز متوجه نشده. مرد عروسکی ادامه داد کتاب آرتور ویک برای موجوداتی مثل شما نبود حسیانهایش برای شما قابل تحمل نبود هر اون رو داشته داغ دیده چه با جادو چه با خشونتی که دیده کتاب را دور اندازید به آتشش اندازید اگر نپذیرید دردسر و خشمشان را طلبید. جارد پرسید خشم کی؟ اونا کی هستن؟ اما مرد کوچک دستی به لبه کلاهش زد و از میز پایین پرید او میانه نور خورشید که روی کف اتاق میتابی فرود آمد و بعد ناپدید شد ملوری انگار که از خالص بیرون آمده باشد پرسید میتونم رو ببینم جارد سر کند او عادت کرده بود هر جا میرود کتاب را هم با خودش ببرد ملوری زانو زد و با سرعتی بیشتر از آن چه که جارد میتوانست بخواند کتاب را ورق زد جارد پرسید هی چیکار میکنی ملوری با صدای غیرادی گفت فقط داشتم نگاه میکردم منظورم اینه که این کتاب خیلی بزرگه کتاب کوچکی نبود جارد گفت بله درسته و این نوشته ها همه این چیزا واقعی هستن جارد این واقعیت خیلی بزرگه و بعد ناگهان جارد منظورش را فهمید اگر از آن دیدگاه به کتاب نگاه می کتاب بزرگی بود کتابی عظیم چنان بسی که درک و فهمش غیر ممکن بود و بدتر از همه این که آنها تازه در ابتدای راه بودند. پایان کتاب اول شما به قسمت هفتم یعنی قسمت آخر از فصل اول قصه هایی برای خواب های بنفش رادیو هجده بنفش گوش دادی شما می ما رو در کانال تلگراممون با نام رادیو هجده بنفش با هجده عددی دنبال کنید منتظر انتقاد و پیشنهادات شما عزیزان، یاران و دوستان عزیز رادیو 18 بنفش هستید مهربون باشید و شاد و مهربون